فصل دهم حافظه و ایجاد تمرکز حواس اگر چه دقت و توجه در جهت تقویت حافظه قرار دارد اما ارتباط تنگاتنگی با آن دارد زیرا به طور کلی رشد حافظه متناسب با رشد تمرکز حواس است بنابراین با پرورش توجه و دقت در همان حال حافظه را نیز تقویت خواهید کرد این چیزی است که مونتاین از مدت‌ها قبل متوجه آن شده و در این باره نوشته بود توجه قلم حکاکی حافظه است ولی دقت و توجه ارادی نیاز به آموزش و پرورش و پیشرفت دارد در وهله اول در رفتار فیزیکی بیرونی که نشانهای از حالت روانی درونی است اولین کوشش شما باید در جهت کنترل حرکات ناخودآگاهتان باشد در کتاب بیودینامیک مغز نوشته هم، افراد بسیار عصبی دائما پاها و دستهای خود را به حرکت درآورده به سادگی عصبانی شده و با کوچکترین صدای هیجانی از جا می پرند. افکار بیوقفه از مغز ایشان عبور کرده و آنها نمی هیچ یک را متوقف سازند. اما شما نباید از ایشان تقلید کرده و آرامش را به واکنش های غیر ارادی خود تحمیل کنید. ما به این ترتیب شرایط فیزیولوژیکی توجه را ایجاد می‌کنیم که ویلیام جیمز درباره ترس می‌گوید با بسیاری از هیجانات نیز کاربرد دارد وی می‌گوید در بسیاری از موارد ما فرار نمی‌کنیم چون ترسیده ایم بلکه می‌ترسیم چون فرار کرده ایم. علاوه بر آن چند حرکت ورزش صبحگاهی که به آرامی انجام شده و تمام دقت خود را باید روی آنها متمرکز سازید و حرکات هماهنگ تنفس عمیق به شما کمک خواهد کرد که واکنش‌های عضلانی نامناسب خود را متوقف سازید. بخش اول تمرینات برای کسب تمرکز حواس. یکی از بهترین تمرینات برای ایجاد تمرکز حواست که در کتب دیگر نیز از آن نام برده ام، شامل انتخاب سه موضوع برای فکر کردن است که اولی یک مسئله علمی دومی یک موضوع شغلی و سرانجام مورد سوم فلسفی و ادبی باشد. به مدت پنج دقیقه ساعت به دست منحصرًا در مورد موضوع اول فکر کنید. اگر افکار خارجی شما را از آن دور کرد، موضوع انتخاب شده را به ذهن خود برگردانید. پس از پنج دقیقه به طور ناگهانی به موضوع دوم پرداخته و پنج دقیقه بعدی به موضوع آخر بیاندیشید. هنگامی که به اندازه کافی ورزیده شدید، چیزی که تصمیم می گیرید به صورت انحساری به آن فکر کنید آسان شده و شما خواهید توانست در یک زمان افکار مزاحم را کنار بزنید. با شروع ذهنی از یک عدد، مثلا 100، شمردن را به صورت معکوس آغاز کنید. به صورتی که هر رقم در یک ثانیه گفته شود. 98 97 96 هنگامی که توانستید به سادگی از 100 تا یک را بدون هیچ گونه اشکال و توقفی بشمارید، باید ارقام را بیشتر کرده و از 200، 400 و یا 500 به پایین کار را شروع کنید. یک محاسبه عددی نسبتاً ساده. با نوشتن ارقام روی یک تابلوی خیالی محاسبه کنید و نتیجه را بدون استفاده از کاغذ یا قلم به دست بیاورید. در هنگام صحبت کردن ض اینکه به آرامی توجه خود را به فکر اظهار شده متمرکز میسازید به کلمات نیز دقت داشته باشید. از طریق نوشتن سعی می شود که نقاط فرگول ها و خط تیره ها به طرز صحیح گذارده شده و خطوط به طرز مناسبی و توازن مجموعه خوشخطی رعایت شوند. و این مسئله مربوط به تدی افکار کما بیش آگاهانه من به صورتی عمل میکنم که بیشتر و بیشتر دقت کنم می شود. بدین ترتیب نوعی خود تلقینی قوی با در نظر گرفتن تکرار آن در شما ایجاد می شود و سوای آن به علت فعالیت برای انجام تمرین توجهتان نیز به موازات آن رشد خواهد کرد مطمئنا در طول آن سمره چون چنین بازآموزی را به دست خواهید آورد مارشال فوش هنگامی که سوتوانی بیش نبود تاثیر خوشخطی را کشف کرده و نوعی نظم را برای نوشتن به خود تحمیل کرد و این امکان را برای خیش به وجود آورد که بر شخصیت خود مسلط شود. وی در همان زمان با تمرین حافظه، حس شنوایی خود را به سرعت با تشخیص تنین های مختلف در صدا و جستجو برای مشخص کردن یک شخص از طریق آهنگ و صدای پای وی و تلاش برای تشخیص جهت گفته هایی که بین آبرین انجام میشد آموزش داد. با آموزش های از این نوع، افراد برخی اقوام اولیه قادر بودند، با چسباندن گوش خود به زمین، سر و صداهای دوردستی را که اصلا قابل شنیدن نبودند، بشنوند و حتی نوع آنها را تشخیص دهند. از سوی دیگر میدانید که معمولا قدرت شنوایی و توجه افراد نابینا بسیار قوی است، زیرا آنها به تدریج آن را تقویت کرده‌اند. اینان قادرند از طریق صدای پای خود بفهمند که به یک جسم نزدیک یا دور می‌شوند و اینکه آن جسم متحرک یا ثابت است و غیره. بخش دوم، سایر تمرینات توجه و تمرکز حواس تمرینات بعدی نیست که نسبت به موارد قبلی کاملا متفاوت است، توجه و دقت را افزایش می دهد. یک برگ کاغذ را بین انگشت شست و سبابه گرفته و آن را به مدت پنج دقیقه به صورت عمودی بدون اینکه به نوسان درآید نگاه دارید. یک لیوان آب را در دست خود نگاه دارید و از ایجاد کوچکترین ارتعاش در آب آن جلوگیری کنید. پشت به یک دیوار بیستید به صورتی که پشتتان کاملا به دیوار چسبیده، بدنتان کاملا راست، ها به دیوار چسبیده و دستها در طول بدن آویزان باشند. به صورت امیغ و آرام تنفس کنید و سپس بی وضعیت بدن خود را عوض کنید پای راست خود را به صورتی که وزن شما روی پای چپ بیفتد بلند کنید. سعی کنید تعادل خود را حفظ کرده و هنگامی که تعادل به دست آمد، دستها را در طول دیوار تا جایی که به صورت افقی درآیند بالا ببرید. سپس آنها را با تنظیم حرکات بالا بردن و پایین آوردن با تنظیم آهنگ تنفس بالا و پایین ببرید. برای آنکه حرکات دستها با فعالیت تنفسی کاملا تداییی پیدا کند دقتتان را برابر سازید. هنگام انبساط ریه ها دستها را به آرامی بلند کرده و در حال خالی شدن ریه ها به آرامی پایین بیاورید. سعی کنید این حرکات را با آهنگ انجام دهید. فقط دستها و قفسه سینه باید در آن شرکت کنند. بدن بایستی در تمام مدت بدون آنکه تکان بخورد به دیوار چسبیده باشد این تمرین می تواند با بلند کردن دستها تا جایی که به صورت عمودی در بالای سر قرار بگیرند تغییر کند به هر حال تمام توجه بایستی علارغم ناپایداری وضعیت جهت نگاه داشتن خود و چسبیدن به دیوار متمرکز شود دست های خود را روی هم قرار داده و انگشت ها را در هم فرو ببرید سپس توسط شست دست راست دایره کوچکی ضمن اینکه سعی می تا حد امکان منظم باشد ترسیم کنید. هنگامی که شست می چرخد با شست دست چپ نیز حرکت مشابهی ولی در جهت معکوس انجام دهید. در اوایل این حرکات به سرعت به هم می‌خورند و و پرتی آنها را متوقف می سازد ولی به تدریج که تمرکز حواز تقویت شده و توجه رشد کند، تمرین بهتر و بهتر انجام خواهد شد. تمرین دیگری از همین نوع شامل بکار بردن دو دست به صورتی است که انگوشت ها باز و بسته شوند. دست رو روبروی یکدیگر با فاصله کمی گرفته و با دست راست یک دایره با قطر حدود 20 سانتیمتر ترسیم کنید. ضمن ادامه دادن به این چرخش با دست چپ نیز دایره مشابه ولی در جهت معکوس رسم کنید. بخش سوم تمریناتی برای رشد دقت و حافظه در این قسمت نیز، چند تمرین را که هم حافظه و هم دقت را رشد می دهد، مطرح می کنم. یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین تمرینات، شامل مخلوط کردن ده یا دوازده قطعه مقواست که به رنگهای مختلفی می باشند. آنها را روی یک میز ردیف کرده و سپس صورت خود را برگردانید. در این حال محل هر یک از آنها را با شروع از سمت راست یا چپ مشخص سازید. دو تمرین بعدی کمی پیچیده تر هستند. به وسیله یک شخص دیگر جدولی تهیه کنید که مثلا دوازده خانه داشته و در هر خانه آن شکل شعی، گلدان، شمدانی، تبر، چتر، نلبکی و غیره کشیده شده باشد. به دقت این جدول را نگاه کنید تا خاطرهای دقیق و کامل، از هر جسم و محل آن و طریقی که در محل خود قرار گرفته در ذهن خود داشته باشید. دوست شما باید جدول دومی را که آن نیز دوازده خانه دارد ترسیم کند. ولی اشکالی که در خانه های آن هستند نباید در جای جدول قبلی قرار داشته باشند و وضعیت آنها نیز می متفاوت باشد. مثلا تصویر تبری که در جدول اول از یک زاویه تهیه شده در جدول دوم باید از زاویه دیگری کشیده شده باشد. کپی تصویر ترازو می تواند در یک جدول در سمت راست پایین بوده و در جدول دوم در سمت چپ پایین باشد و غیره. پس از آن که جدول اول را از جلوی چشم برداشتید، تمرین به این ترتیب انجام می شود. پس از بررسی جدول دوم با دقت، از طرفی برای هر تصویر شماره جدول اول یا اصلی را ذکر نموده و از سوی دیگر باید مشخص سازید که آیا وضعیت یا جزئیات خاص آن شی در این جدول تغییر کرده است یا خیر. با جانشین ساختن تصاویر اجسام توسط اشکال هندسی، اگرچه این تمرین شبیه به تمرین قبلی خواهد بود، ولی انجام آن بیش از پیش مشکل می شود. این مشکل در واقع ناشی از شکل هندسی است که بر اثر اشکال گنگ آنها تخیل را کمی مختوش می کند. به صورتی که خاطره ذهن را به صورت نامفهومی بیدار می‌سازد خصوصا اگر برای کشیدن این اشکال از تعداد کمی عناصر مثلا خطوط راست و منحنی بدون استفاده از سایر خطوط استفاده شده یا چند شکل مشابه یکدیگر باشند تبرینات دیگری نیز می‌توانند بر حسب شرایط و به عبارت دیگر بدون آمادگی قبلی مورد استفاده قرار گیرند یکی از این تمرینات که آن را رابرت هودین انجام میداد شامل مشاهده اشیای ارائه شده در یک ویترین است. این شخص هنگامی که به منزل باز میگشت، فهرستی از آنها تهیه کرده و فردا این فهرست را مجددا با آن ویترین مقایسه میکرد. بدین ترتیب، این تردست معروف چنان دقت قویی پیدا کرده بود که برای وی کافی بود یک نظر به ویترین یک مغازه نگاه کند. تا بتواند به سرعت هر چیزی را که در آن وجود داشت نام ببرد. نوع دیگر این تمرین شامل داخل شدن به یک اتاق دارای اساسیه و انداختن یک نگاه سری به اطراف و به دنبال آن یادداشت کردن تمام جزئیاتی که در آن یک نگاه دیده شدهاند. پیشرفت سری که به دنبال این تمرین ایجاد می می‌شود تعجب‌آور است. همچنین می توان یک شی از هر نورا را بررسی کرده شکل، ابعاد، رنگ، جزئیات ریز و غیره را به خاطر سپرده و سپس آن را کنار گذاشت و شرحی تا حد امکان دقیق و کامل در آن نوشت. هنگامی که این کار به پایان رسید، این شهر را با خود آن شی مقایسه کنید. روز بعد این تمرین را مجددا با همان شی انجام دهید. در این صورت مشاهده می شود که برداشت که از آن به ذهن می رسد، بیشتر بوده و جزئیات تازه‌ی بیشتری از ذهن به دست میآید همچنین می‌توان به طریقه پلیسی یک شخص را سریعا نگاه کرد. سپس چشمها را بسته یا سر را برگردانده و جزئیات چهره اندام و لباس وی را نظیر اصلاح سر رنگ موها چشمها فرم بینی لبها رنگ و طرح پیراهن و غیره را به خاطر آورد با انجام منظم تمرینات متنوعی که در این فرازها تشریح شدند، بیشک قدرت دقت، تمرکز حواس و در نهایت حافظه را رشد خواهید داد. به دنبال آن، هر برداشتی ارزش واقعی خود را خواهد داشت. به شکل تازهی دیده شده و جنبه های اصلی آنها کشف خواهد شد. زندگی روحی به این ترتیب عمیقتر و به همان اندازه قنیتر خواهد شد.